بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند، تا مرا بپریدند در نفیرم مرد و زن نالیدند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کودور ماند از اصل خیش باز جوگت روزگار وصل خیش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم هر کسی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 لیک کس را دیده جان دستور نیست آتش است این بانگ نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد آتش اشقه است در فتا جوشش اشقه است چندر می فتاد، نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده ما درید، همچون نی زهری و تریاقی چدی همچون نی دمساز و مشتاقی کدید نی حدیث راه پرخون می کند قصه عشق مجنون میکند کند محرم این هوش جز بیهوش نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست در قم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها جرفت گو و باک نیست تو من ای آنکه چون تو پاک نیست هرکه جز ماهی ز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 چند باشی بند سیم و بند زر، گر بریزی به را در کوزه ای، چند گنجب قسمت یک روز ای. کوزه چشم حریسان پر نشد، تا صدف قانع نشد، پردر نشد. هر را جامز عشقی چاک شد او زهرس و عیب کلی پاک شد شاد باش ای عشق خوش سودای ما ای قبیب جمله علتهای ما ای دوای نخوت و ناموس ما ای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 با لب دمساز خود گر جفتمی همچون نی من گفتنی ها گفتمی هر که او از هم زبانی شد جدا بی زبان شد گر چه دارد صد نبا چون که گل رفت و گلستان درگذشت گذشت نشنویزان پس ز بلبل سرگذشت جمله معشوق است و آشق پردهای زنده معشوق است و آشق مردهای چون نباشد عشق را پروای او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 آینت دانی چرا قماز نیست زن که زنگار از رخش ممتاز نیست بشنوید دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماستان